الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شریکن في الملك فلم يكن له ولي من صله وكبره تكبيرا فالسلام و السلام على خیر خلقهی فعشرف بریت سیدنا و مولانا خبیب اله الالمین عبل غاسم المصطفى محمد محمد <تصفيق> <تصفيق> صلی الله عليه و علیه و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی حرواهما لطراب و مطباق والانۃ الله الا اندایه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین خوب شب و ماه مبارک رمضان خدا رو به آبروی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 خب عرائز ما در این شب‌های ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهی بر مبارک و فرمایشات امیر علیه السلام به امام حسن مجتبا علیه السلام در نهج البلاغه نامه 31م و, و شب‌های گذشته عرض کردم که ما در آخرین فرازهای این نامه هستیم که تو این چند شب که حالات از این عمر این جلسه باقی مونده یه چند جمله دیگه از این فرازهای پایانی رو عرض میکنم دیگه حالا ما به همین اکتفا میکنیم امشب به این جمله از کلمات آمیز حضرت امیر میرسیم که حضرت میفرماید که ما اقبهل خضوع عند خاجه ول عند اندال قنا ترجمه این کلام اینه که میفرماید که چقدر زشته که انسان وقتی که نیاز داره خضوع کنه خودشو زلیل بکند اما وقتی که بی یا احساس میکنه که نیاز نداره خشونت بکنه سرکشی بکنه تغیان بکنه این چه صفت زشتیه این فرمایش رو ما دو جور میتونیم معنا کنیم یکی این که بگیم این فرمایش اشاره است به رابطه انسان با خدا یکی اینجور میشه معنی کرد که بعضی انسان ها وقتی که به خدا نیاز دارند خضوم میکنند در مقابل خدا از اینجور گرفتار که باشند گریه میکنن زاری میکنن سجده های طولانی میرن نماز میخونن اشک میلیزند مثلا یه وقت یه خدایی نکرده ببخشید من میخوام مثلا بگن دخترت سرطان داره دیگه میاد در خونه خود اصلا خانوما توشون شاید بیشتر کل مفاتیح رو میخوام شب و روز تو مفاتیح همشم به این نوم میگه که اگه دعایی هست که حاجت میده بگو من انجام بدم خسته نمیشه. همشم گریه وزاری و هر هرکی هم میرسه چشاش پر اشک میگه که دعا کن خدا حاجت منو بده. گرفتار. موقع گرفتاری و نیاز در مقابل خدا چی میشه خازه میشه. اما گرفتار نباشه روزشم میخوره سرکش میشه توغیان میکنه یا نماز صبحش هم قضا میشه یکی میتوند این باشه این خیلی بده که آدما تو گرفتاری دل شکسته دارند و همش در خونه خدان اما تو آسایش تقیان میکنند دنبال فسق و فجور میرند یا بیعتنائیه به خدا میکنند روشون از خدا بر میگردند مردان خدا اینطوری نیست، مردان خدا در همه حال حالشون یکیه خیلی عجیبه خیلی هم سخته ها. یعنی کمن اینجور آدم ها یعنی شما اگر همین شب عادی اینا رو ببینی. مثل آدمایی در خونه خدا میرن که دخترشون سرطان داره انگار که دکترها جوابش کردن خدا رو مثل قریغ میخونه مثل کسی که داره الان قرغ میشه تو گرفتاری هم همونجوره یا اقلن حالا اون که خیلی سخته مثل امام حسین مثلا شما شب آشورا حالش همونطوری بود که شب عروسیش هم همونطوری بود نماز شبی که شب آشورا خونده مثل نماز شبی که شب عروسیش خونده همه حالته یکسانه اینا همیشه خدا رو مثل قریغ میخوانن چون خدا معرفت بالایی به اینا داده من اینا فهمشون خیلی بالاست من اینا الان برای جوانامون که گوش میدن ذهنشون میخوام باز بشه اینا رو میگم همه الان که من دارم اینجا سخنرانی میکنم همه الان یه تو بیمارستان ها دارن شیمی درمانی میشن درد میکشن من چه حالی دارن سرطان دارن این ها ریخته درد میکشند همه الان شما دار اینجا صفا میکنه اون داره بعد اون آرزوش میدونه چیه آرزوش اینه که یه آمپولی پیداشه اصلا شفای ها دیگه اصلا نمیخواد تو زنش هم نمیاد میگه یه مورفینی یه آمپولی قوی باشه بزنن یه نیم ساعت بخوابم میگه همون سه شبانه روز درد نذاشته بخواب. همین فرای این عرضی نیم ساعت بخواب. شاید دو شب دیگه به سر ما هم همین بیاد شاید سال دیگه این موقع به سر ما همین بیاد کسی از آقا تو شما زمانت بده که ما به اون روز نمیافتیم اینا خدا رو مثل قریغ میخونن یا ما با اون فرقی نمیکنیم که شاید چند روز دیگه حال ما اونطوری باشه مثل کسی می خدا رو میخونن که تو اونجا داره درد میکشه میگه خدایا ممکنه چند وقتی دیگه نوبت ما میشه همین الان که من دارم اینجا سخنانی میکنم یه داره دارن رو سنگ قصد سالخونه میشورن پرتش میکنن این بر پشتشو میشورن. روشو میشورن. شاید چند شب دیگه نوبت ما باشه. بعد 120 سال که نوبت ماست بگه. اینا خدا رو اونجوری مثل کسی که دارن رو قصدال خونه میشورنش میگه خدایا یا اون ساعتی که من رو سنگ به من اون ساعت پرخم کن. رحم کن. این رحم کن اون ساعتی که مردم من رو سنگ قصدال خونه چفرست میکنن و میشورن. همین الان که من دارم اینجا صحبت میکنم یه چی چیان آقا پاشون به قبله است. دیگه آخرین ساعت هاست خودش هم قطع امید کرده این میگه ازرایل الان میاد یه روز هم نوبت ماست دیگه یه روز نوبت ماست شاید نوبت بچه باشه شاید نوبت چه تزمینی است که آقا برا ما ها نباشه اینا که برا همه از میکن اینه که دارم میگم اینا یه معرفتی دارن که میگن بین ما و اونا هیچ پرقی نیست حالا اونا امرو مبتلا شدن چند دیگه نوبت ماست ما داریم واسه اون روزمون گریه میکنیم ابو حمزه میخونین شبا مالی لا ابکی مالیلا. لا نمیدم چه چجوری باید معنی کرد یه معنیش اینه که چه شده منو چرا من گریه نمی کنم مالی لا ابکی چرا من برای اون روزها گریه نمی کنم عبکی لزلمت قبری من باید گریه کنم برای تاریکی قبرم این زیر زمین چه خبره رفتین آقا مرده ها رو من گاهی خداش رو دلم می برای این مرده که می خواهیم از انقدر تنگه جان نیست تو قبر بذارن مستقب آقا زیر سرش اینا اگه یه ای وقت مرده کاسیم بذارین نزدیک بریم تو زیر سرش سنگی نباشه دست بکشین نرم باشه این اذیتش نکنه سرش رو یه دفعه میذارن روی سنگ صورتش می زن... رو میذارن روی سنگ یه وقت رخ... بعد سنگا رو میچینم اون زیر زمین چه خبره همه میرن میگه من بعد الان ناله بزنن بلند بلند گریه کنم برای کی؟ برای اون ساعتی که صورت من رو میذارن رو خاک لزیغ لحدی برای اون تنگی قبرم من بفهمه خب میگه چه فهم میکنه یکی امشب که 120 سال بعد منو من نمیذارن دیگه 120 سالم هم جوون ها یه چشم به هم بزنی تمومه به خدا شما جوانین یه زمانی آدم میره سربازی ما که همه اینا رو من تهی کردم آدم اول که میره سروازی این لباس بهش میدن فانوسخه میدن این اصلا اولین روزه دلش میگیره اصلا نزدیک دق کنه میگه بعد دو سال تو این سر سربازم اصلا میگه دو سال یه عمره اون قدیمی ها میان اینا رو من رو دیدم و قدیمی ها میان میگن آقا چشم هم بزنید اصلا آتیش میگیره میگه آقا یعنی چی چشمه میگه الان من هرچی نگاه میکنم این ساعت دهونیم نمیشه چون یعنی چی چشمه هم بزنید تمامه اما یه زمانی میاد هشتاد سالشه به نواهاش میگه دیروز بود ما تو این باقش ها رفتیم تقسیم شدیم میگه به خدا دیروز بود فانوسقه به دادن کل این هشتاد سال رو میگه یه شبان روز همین چشم هم بدنی تمومه مالی لاعب کی چرا من گریه نمیکنم؟ یکی من یکی این که شاید به امام اعتراض میکردن امام زین راب الدین چون ابو حمزه مال که چرا شما اینقدر گریه می‌کنید حضرت میگه چرا گریه نکنم؟ گریه... از اونها که گریه بله از اونایی بهروز اینجوری گریه نمیکنن یعنی بعد بیان از ما میگن آقا شما مگه شب اول قبر نداری تو چرا گریه نمیکنی؟ تو مگه پیری نداری تو مگه چوب میکنی؟ قبر نداری تو مگه برزخ نداری تو چرا گریه نمی کنی برای اون روزت؟ مالی لاعب کی چرا گریه نکنم؟ چه می شده که گریه نکنم؟ توجه بم... اینا حالشون تو زیر کلر با آدمی که امشب گذاشتنش تو قبل یکیه یعنی مثل اون ناله میزنن. میگن چرا تا هم امرو اون رفته چه دیگه نوبت ما امرو این بچهش جواب کردن یه روز هم بچه ما رو جواب میکنن امرو به این گفتن دیگه سرطان خون داری یه روزم به ما میگن سرطان عصد خون داری چه فرقی میکنن این یه چطوریه که در خونه همه میخوابه اما یه اده اینجوری نیستن آقا میگه چقدر زشته که آدم وقتی گرفتاره گریه وزاری کنه اما وقتی آسایش داره تقیان کنه در مقابل خدا همین بعضی‌ها صبح که از خونه میام بیرون یه دونه از این آب مدنی ها دستشونه تمام سال این آب معدنی میواد فقط ما راه مزونا میبره من به این میگم آقا مگه تو ما آ دیگه تشنت نمیشه یعنی تو الان شوال الان چهل روز دیگه شوال اگه این آب معدنی ازشون گرفته یعنی اعلان جنگ با خدا یعنی خدای ما تو رو قبول نداریم و روزه نمیگه آ این چیه دستت میگیری میگه تو هیچ ماهی تشنت نمیشه. بعد میخوای بخوری. خب یواشکی بخور. چرا علنی با خدای دانو جنگ میگی. همین آدم آقا اگه بچهش تام بگیره روزه میگیره. من اگه بهش بگم که آقا سه روز روزه بگیر حاجت میگیری. میگه من برای احتیاط یه هفته میگیرم آجا. میگه من گفتم سه روز. میگه آقا از زیادی که ضرر نمی یه خانومی به والده ما گفته بود که ببخشید آقایون خیلی من معذرت میخوام با این رو همه رو شنیدیم من این جایی نخوندم ها به والده ما گفته بود که نماز ستون دینه این ستون با یه باد معده باطل میشه دینی که ستونش انقدر شلو وله وای بال حال خودش بریم توجه ببراییم این با یه باد معده باطل میشه. همین همین خانوم آیون چیزی نگذشت دختر ای به مادر من گفته بود که به پسرت میره منبر بکنی که نماز حاجت چجوریه. من دیگه بشت نگفتم آقا تو که میگه با باد معده باطل میشه. حالا که گرفتار شدی نماز حاجت میخونی. بگو جعفر تیار میخونه. بگو من نماز جعفر تیار خونم حاجت گرفتم میخونه. میگه این چقدر زشته آدم تو گرفتاری خضور کند در مقابل دین اما وقتی آسایش داره تقیان کنه و این حرفای بی بیرفت رو بزند این توجه بفرمایید. این یه معنا یعنی یه معنای این جمله که قرآن هم میگه ازار رکبو فلفولک دعوال لا هم مخلصی میگه اینا وقتی سوار کشتی میشن چون کشتی زیاد اون کشتی های قدیم خب خیلی هم قوی نبود بعدم تو این گردبادا و طوفان ها میگه اینا وقتی که میافتن تو طوفان و مرگ رو میبینن دعو الله مخلصین له الهدی الان میخوای مشابهشو بگن سوار هواپیما بشی خلبان پشت بلندگو بگه من موتورام از کار افتاده دیگه کاین حسن بیا تماشا کن یعنی تمام این هواپیما میگن یا قبر بنی هاشم کو کلی و چادری به خدا بی نماز و نماز خون روزه بگیر و روزه خواب. ذرا فرق نمی کنه یعنی شما اصلاً نمیتونید فرق بذاری کدوم اینا بدینه کدوم اینا بی دین برد چون همه یه جور خدا رو صدا میزنن همه به پناه اسلامش گریه میکنن میگن یا قمره و باشه خدا میگه این بده که شما گرفتار میشیم خدا رو صدا زنیم اما خدا میگه و اذا نجاحم الابر اما وقتی من اینا رو نجات میدم میان پایین از حواب ایمان میگن عجب خلبانی بودا خلبان چیه مرد حسابی اون که خودش رو رو به قبله بود داشت خدا رو صدا میزن خلبان چیه میگه نه پس فرمونی داشت نشون بداخله آقا میگیم اون که خودش داشت میگو بیا قبر باز دوباره به خلبانه نشان لیاقت میدن باز خدا یادشون میدن آقا پس کی اونجا خدا رو صدا میزن از میگه این زشته ما اقبهد چقدر زشت از انسان اینجور با خدا برخورد بکنه اما بعضی ها میان به من میگن آقا لو چه ایرادی داره تو گرفتاری میان خب نه تو گرفتاری میان بعد که سرکشی میکنه چی ما که نمیگیم بعد آدم گرفتار بیاد در خانه خدا اینو نمیگیم ما میگیم بعد از انسان وقتی خرش از پل گذشت خدا رو فراموش بکنه خدا اینو میگه می این زشته برای در خونه خدا رفتن که بد نیست این یه معنا اما یه دنه همیشه یه جوره این ایوب عبد صالح خدا بود خیلی هم سربتمند بود دیگه شاید سی چل تا فقط اولاد داشت چقدر گوستن داشت چقدر گاف داشت چقدر مزرعه داشت مالدار بود مزرعه دار بود اب جو هم بود همش هم خدا رو عبادت می‌کرد شیطان اومد گفت خدایا به هر کی اینقدر ثروت بدی خب عبادت تو رو میکنه دیگه اینم چین تخم دو زرده که نمی‌کنه که این همه ثروت این همه مکند این همه بروبیاو خب به هر کی بدید نماز شب می‌خونه حالا اولا این جمله جمله غلطیه یعنی چی هر کی بهش اینقدر ثروت بدم مگه قارون اینقدر ثروت نداشه مگه خدا به این ترامپ آقا اینقدر ثروت نداده مگه به بنتانیو نداده مگه این آقا ثروتمند نیستم مگه مگه به معاویه نداده یعنی چی ارکی بدی اتفاقا اکثرا انسان وقتی ثروتمند میشه تقیان میکنه قابل عنا دیندارن شما الان هر چی به سمت جنوب شهر تهران برید مردم دیندارند هرچی هر چی فقیرترن ترن حالا شما نازیاباد بری نمیدم جوادیه بری پر مسجد پر حسینیه اما بری جردن خب مسجد پیدا نمیشه حسینیه پیدا نمیشه هرچی میری بالا کم میشه هرچی به سمت فقرا میری شهید زیاد داده محله هاشون بری همه ها به نام شهید هرچی میری بالا میبینید کوچا نیلوفه رو، اقاقیل رو، یه چیزایی بچو میشاییت نبات بچو همش قوراناها دیگه این اصلا خودش غلطه که به هر کی ثروت بدن مثل ایوب میشود این همه اتفاقا انسان میگه قرآن میگه ان الانسان لیتقا الرعوه استقنا انسان وقتی قنی میشه طغیان میکنه بله خدا برای این که نشون بده که ایوب با... گفت من رو دنیای ایوب تو رو مسلط میکنم برو هر کاری می خوای این اینا آقای یه وبا تاون آورد تو بچه های این همهشون از دنیا رفت یه آفت اومد تو مزره هاش همه خوش شد گاو و گستنداش هم همه مردن اصلا نشست خاک خودش هم که بیماری پوستی گرفت و مریض شد مثلا قبلش ایوب روزی در دوازده ساعت عبادت میکرد ارانم که گرزای اینا هم اصلا هم انگار همون برنامه حالش تو گرفتاری و آسایش یکی اینا مردان خدا من نمیخب قصه ایوب و تا آخر بگم اما اینا عبد صالح خدا اصلا ما اینا فرق نمیکند میگن هم اون امتحان هم این امتحانه اونجایی که ما سروتمندیم خدا داره ما رو امتحان میکنه ما بعد رو سپید بیرون بیاییم اونجا هم که مریضیم و فقیریم و گرفتاریم خدا داره ما رو امتحان میکنه بعد رو سپید بیرون بیایيم بعد وزیم رو انجام دیم یکی خب این یه معنا یه معنا ممکن است این جمله اشاره به این باشه که رابطه انسان با انسانهای دیگه نه با خدا اینم معنا میشه کرد میگه چقدر زشته بعضیا نیاز که دارن خودشون رو در مقابل دیگران چقدر زلی میکنن باز اینجوریه خدا نکنه بعضیا نه بعضیا عزت نفس دارن نیازم داره آقا در مقابل هیچ کس قرب نیازم داره احتیاج هم داره ولی میگه من فقط در مقابل من دردمو به خدا میگم خودمو در مقابل هیچ کس خار نمو اما بعضی دیدیم آقا ضعیف و نفسیانند من نیاز دارن در مقابل دیگران خودشون رو ذلیل میکنن گویی رو دست و پاش میافتنن مثلا تو اداره من دیدم همی... یه بار مدیر گفته بود من تعلیل میکنم این آدم رفته و جلوی قطوب بیرونت میکنم من نی... نیازن مثل بارون جلوش گریه میکرد hey هی ام التماس میکرد که به من رحم این ضعیف و نفسی. چقدر زشته که آدم وقتی نیاز داره در مقابل انسانهای دیگه خودشو چیکار کنه خار کند مثل بعضی گده ها چقدر خودشونو در مقابل دیگران خار میکند اما همین آدم اگه غنی بشه خدا نکنه آقا شلوارش دوتا بشه حالا هرکی بیاد در خونش با قذب با شدت او رو میرونه میگه برو گمشو برو برو میگه آقا من تو همان نبودی که تا کمر خم می شدی که یه چیزی بهت بد بدهند. حالا که شلوارت دو تا شد طغیان می‌کنی دو دو یعنی این آدم چن ضعیف نفسه حالا خدا نکنه این یارب روا مدار که گدام معتبر شده این یه دفعه بیا داره بروبیایی پیدا کنه حالا ببین با مردم این چه جوری برخورد می‌کنه میگه این چقدر زشت است که انسان وقتی نیاز داره خودش رو خار کنه اما وقتی قنیه خشونت کند با دیگران گدارو از درخونش براند هر دو رو میشه معنی کرد من یه جمله از امیر نوشتم نه جلبلاغه حکمت چارصد و شیش تو همین کلمات قصار ضد این حضرت اینجا گفته ما عقبه هم اونجا گفته ما احسنه ضد <تصفيق> این اینجا گفته چقدر زشت اونجا گفته چقدر زیبا، چقدر میکوه. خب ببین اون،, اون کلام ضد اینه خوبه که آدما اینجوری باشن تواذ و الاقنیا للفقراء چقدر چقدر زیباست که آدم‌های ثروتمند در مقابل آدم‌های فقیر تواضع کنند برای خدا. منی کسی وزیر در مقابل رارندهی خودش تواضع کنه برای خدا. در مقابل آبدارچی خودش تواضع کنه. یه کسی ثروتمند در مقابل فقیر تواضع کند برای خدا. این ضد اونا همه چی داره اما آدم خاکی و میگه خدا دوست داره خدا, خدا دوست داره که آدم غنی در مقابل آدم فقیر متواضع باشد خدا رحمت کند مرحوم امام رو یه خادمی داشت حاج ایسا ها هنوز زنده است سالهای قبل چهارده خرداد میشد می آوردنش تلویزیون داشت خیلی دیگه سنش رفته بود پیر مرد بود این خادم افتخاری هم بود امام مثلا خادم اینا همه کاراش هم خودش انجام می داد این رو علاقه‌ای که به امام داشت التماس کرده بود که من بیام به ایشان خدمت کنم فی سمیلالله هم خدمت می پول هم نمی گرفت. اما تلویزیون نشونش داد اگه من تو یه روز چهل مرتبه پنجا مرتبه تو اتاقیشون می رفتم. هر چهل بار بلند می شد با این تواضع یه رهبر در مقابل قادم خودش گفت آخر دیگه من گفتم که شما من اول صبح که یه بار میام سلام میکنم و اینا شما پاشین بقیه یه رو دیگه خودتون رو به زحمت من رسیده حساب میکنم من میگم اصلا پاشو دیگه امامی بگفت یه نگاهی من گفت من برای شما پا نمیشم من برای خدا پا میشم خدا این صفت رو دوست داره من پا نمیشم تو خوشت بیای بری یه جا دیگه هم تعریف کنی برای ما یه فضیلتی بشه من این کار رو میکنم خدا تفنده. بعد بودم شما چرا اینقدر جلو پایی من بلند میشیم من هر وقت بلند میشم برای نماز شب میبینم چراغ تو قبل از ما روشن شده تو مومنی خدا اینجور در ما رو دوست داره ما هم باید دوست داشته باشیم. این توازو آقا یه آدم پستدار همه چی؟ در مقابل خادم خودش برا خدا اما همین آدم همین امام در مقابل ادوارد شباد نادزه شد وزیر خارجه شعردی گفت اون کمونیسته خدا رو قبول نداره من در مقابل کافر قتیمش نمی‌کنم. در مقابل وزیر خارجه شعربی بلند نمیشه در مقابل خادم خودش بلند نمیشه این همون است که خدا میگه اشداب و علال کفار رو همه و بینه هم. اما ما اگه یه خارجی ببینیم بعدی آقا میرم در مقابل یه مثل بلبل انگلیسی میگه اون فارسی صحبت کنه تو میگه آقا اون به اون عظمتش فارسی صحبت آقا مگه چه عظمتی خودشو گم میکنه اما در مقابل خودیا ها سرکش حالا با آبدارچی چجوری برخورد میکنه با راننده خودش چجوری برخورد اما در مقابل بیگانگان زلی بره اما شما نگاه کنید آقای این در مقابل پاستار ایشون میگون اون اوایل انقلاب که هنوز سفارت آمریکا رو نگردن سفیر امریکایی اومد دیدن ایشون اون مقای اینجوری بود نظمی که نداشت گفته بود آقا گفته بود آقا تو اتاقه سفیر رو میاره تو اتاق مینا آقا نی تعجب میکنه میگه من الان اینجا بودم آقا اینجا بود نمیدونم سفیر یه خورده وای میسته مینا نیومد اومد میشینه زمین آقا بعد از 10 دقیقه میاد همین تا میاد سفیر آمریکایا بلند میشه وای میسته جلوی ما. امام. امام هم میاد اونجا میشینه بعد که رفت گفت رفتن با آقا گفت آقا شما تو بودیم من اومدم دیدم نیست گفت تو ناشگیری کردی با من هماهنگی نکردی سفیر رو گفتی من دیدم اگه این بیا تو من بعد جلو این بلنش شم وایستم اسلام در مقابل کف خار میشه خدا اینو نمیپزنده و از پنجره رفتم بیرون یه پیره مرد هشتاد ساله از پ... گفت گذاشتم بشینه من اومدم این پرید بالا کف در مقابل اسلام خار شد خدا اینو دوست میداره می... خدا دوست داره آقا آدم قنی در مقابل فقیر تواضع کند برا خدا برا خدا بگه خدا میپسنده نه برن که اصدر کنه نه نه نه بگه خدا این صفت دوسته از این... از این زیباتر چی؟ حدیث آقایون گوش بدید این دارم از محجر می میخونم این کلمات قصاد و احسن و من میفهمد از این زیباتر چی؟ پی ول فقرا علل اغنیا بی فقر فقرا در مقابل پولدارا قدم فقیر در مقابل پولدار بی اعتنایی نه سلام نکنه نه نه تملقش نکنه دلراست نشه بی اعتنایی فقرا در مقابل اغنیا اتکالاً علال الله بگه من توکلم به خداست به اینا اتیاج ندارم خدا همه چی به من میده من لنگم هم نمیزنم من خدا دارم نیازی به پول دارا ندارم نیازی به آدم فقیر بی اعتنائی کند به آدم بی اعتنائی منظور نه که بی ادبی کند نه که معاشرم نه کرنش نکنه تملق نکه چرا بگی من توکلم به خداست خدام الحمدلله شما باید بگی آقا من نوکر امام حسینم امام حسینم نوکراشو لنگ نمیداره حسین <تص> میکنه اگه می‌دونیم میخوای امام حسین رو بزرگش کنین به اینا بی‌احتنای باشین می‌گن من حسین دارم به هیچ کی احتیاج ندارم امام حسین بزرگ میشه می‌دونیم امام حسین کی خار میشه ذلیل می شود اونجایی که نوکراش همه برن در خونه اینو اون کرنر میگه آقا مگه من نمیتونم شما رو اداره کنم من ارباب بدی هستم من ارب من نمیتونم شما رو اداره کنم شما باید برید دنبال اینو اون شما باید بگی آقا ارباب مثل حسین بن علی پیدا نمیشه همه چی به ما داده به هیچ که هم نداریم پشتمون به کوه یه با دادتون تو همین دهه تو همین سیشبی که اینجا صحبت میکنم مسلم آقای اون انقدر زده و از همه جاش خون میرفت اصلا یه شرمی دادنش وقتی وارد به ابن زیاد شد به ابن زیاد سلام نکرد این چقدر زیباست بیعتنائی یه آدمی که اسیبه یه آدمی که اسیره و هر کسی دارد اون رو میزند به آدمی که امیره یه از این دور غابچین میخواست ابن زیاد خوشش به گفت چرا به امیر سلام نکردی مگه امیر رو ندیدی همین تا گفت چرا به امیر سلام گفت این زنازاده رو میگین امیر خاک دو سرتون امیر خاک شما خای. این امام حسین چقدر سرف راز. گفت شما به این زنازاده میگین امیر خاک بر فرق سرتون که ای مثل این امیر شماست بعد گفت امیری حسین نعمل <متقال> امیر گفت میخوایین امیر منو بشناسیم امیر من امام حسینه از این امیر بهتر پیدا نمیشه این, این امامو عزیز چه غرضی اسیری مثل مسلم ابن این اینجور بی اعتنائی کند به ابن زیاد عباسم عمان نامه رو که زد تو صورتشون تو صورت شمر زد شم که کمتر از ابن زیادم عمان رو زد تو صورت خاک تو سرت کنم به من عمان نامه میدی در حالی که پسر فاطمه عمان نداره عرض ببر مردشونتون رو گفت بره چقدر آقای اون عرض چقدر زیباست ثروتمندان ببین حدیث ازتون از از نره در مقابل فقرا توازو کنند برا خدا این باتر فقیر بی اتنایی کنه به سروت من بگه من اتکالم به خداست من حسین دارم چه قم دارم نعم المغلا و نعم النسی من این همه سقرانی کردم شد مثل این کم دیدم امام وقتی که با همه خدافزی کرد رفت، تقریبا کارو تمام کرد تو مقتر از چند قدم که رفت این بچه های خورد سالش واقعا جان سوزه دوریدن دنبال بابا حیثت یا عبا یا عبا <تصفيق> اونها که بچه کوچیک دارن می یعنی چی امام برگشت فرمودن که چی از خوب گوش بدین شنیدنی ها گفت چی از از من یه نگاهی کردم گفتن میری ما رو به کی میس <تصفيق> برن تو اینجوری با خیال راحت میری ما رو به کی میسپوری آقا بدون اینکه گریه کنه بیتا. گفت به خدا گفت تالام خدا شما رو حفظ میکرد من حفظ نمیکردم چه توحیدی الان آقا بچه های من من حفظ میکنم یا خدا حفظ. الان بچه های من ببخشین ها بچه های من سرطان نمیگیرن مریض نمیشن نمیمیرن من حفظشون میکنم یا خدا حفظشون میکنم من چه کارم من خودمو نمیتونم حفظ کنم بچه هم... من خودمو نمیتونم از مرگ حفظ کنم بچه هم میتونم حفظ کنم. خدا حفظ کنم نماشم خدا حفظ میکنم اصلا فرقی نمی کنم. مگه من تالا من حفظ کردم که از این به بچی حفظ میکند گفت به خدا بعد گفتش که بچه من ما حسبون الله خدا ما رو بزه و نعم الوکیل نعم مولا و نعم النسیر این جملات امام حسین و بچه هاش راوی گفت من ندیدم یه مردی که این همه زن و بچه داشته باشد اما اینجوری اینا رو پشت سر بندازه و رو به خدا رو کنه گفت این میگه وقتی رو کرد به سمت خدا طوری رفت انگار تو این عالم این هیچ‌کی رو نداره دیگه آخر هست زینب به مادرش شکفه میکنه این شاعر خیلی خوب گفته شکفه زینب یه نگاهی به مادرش کرد گفت این آشنا ببین که چه بیگانه میرود <تصفيق> <تصفيق> پنجه هف سال پنجه سال با هم اصلا دیگه ما رو به جانه میرود <تصفيق> این آشنا ببین که چه بیگانه میرود دیگه آخر صدایش دیگه اتناه نمی کنه محلا محلا یبنه زهره بخونم همین جا رو روزه بخونم گو من عنو وسیعت مادرم رو عمل نکرد کرد بیبی بی. من زیر گلو رو نبوسی برد. دوباره امام اومد پایین یه پیراهن کهنه به تن امام کرد همه بچه ها دارن تو خیمه میبینن یه وقتی در امه لبه ها رو گذاشت زیر جلوی عبا عبدالله رو گوسته من روزم همین باشه دیگه پیش اومد اومدم بالا منبر گفتم این ذاکر رو تباییت کنم دلال رو ببرم در خانه قمر بنیاشم نشد ببین؟ من ارزم تمام حسینی ها کرولایی نمیدونم این بوسه به زینب سخت گذاشت <تصح> حسین آخر جای مادر <تصفيق> اینجا برا زینب سخت بود که جای مادر زیر گلوی عبا عبدالله رو میگوستید یا اونجایی که اومد تو گودال قطلبا اونجا هی شمشیر شکسته ها رو کنار زد نیزه شکسته ها رو هرچی نگاه کردی جای سالمید اونجا چی کار کرد این لبها رو گذاشت رو اون رگه های بریده میبوسید و عشق میریخ خیلی معذرت میخوام میخوام حقشو عدا. می بوسید، عشق میریخ یه وقت یه دختر چند ساله اومد چادرشو تکند امه جان این بدن کیه چرا پاره پاره چرا بیسره چرا رگ گلوشو میبوسید خب اگه نگم بعدن گله میکنه میگه امه تا اونجا اومدم نگفتی بابامه گفت این بدن پاره پاره بدن پدرته بدن باباست این دخترم خودشو انداخت خیلی معذرت میخوام از همه ما یه مشت از این عربا اومدن تو گودان مجتمعت فرغتون من الاعراب اینا کاری کردن یه وقت این دختر صدا زد بابا پاشو اممو دارن تازیانه میزنن اون زور الا اممتی المذروبه ورؤوسنا المكشوفان وصلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة